سوره مبارکه ماعون را می خانیم. در سوره گذشته موضوع تزهید من دنیا بود و زجر بر کسانی که قیامت را تکذیب می کنند حال در این سوره هم تزهید هست و زجر بر مکذبین قیامت و همچنین بر کسانی که انفاق نمی کنند بالخصوص بی یتیم ها رسیدگی نمی یکذب بالدین آیا دیدی اون انسانی را که نسبت روز جزا روز جزا را تکزیب می کنند. روز قیامت را تکذیب می کنند فذالک اللذی یدعو الیتیم ان کسی که یتیم را داف میکنه ببینی کسی که به قیامت اعتقادی داشته باشد بر یتیم هم ترحم دارد اما کسی که اعتقاد داشته نباشد صدقه و انفاق هم نمیکنه میگه چرا من خرج بکنم چرا معلم را بدم ولا یحض على طعام المسکین بر طعام مساکین تحریک نمیکنند تشویق نمیکنند اما به این وجود نماز میخوانند اهل مکه این درباره اهل مکه هست، این درباره منافقی نیست، اهل مکه نماز میخوندند، من قبلا در مقدمه در مسئله اله خدمت شما عرض کردم که اینها خودشون را مسلمان کامل می دونستند پایروه ابراهیم می نماز می روزه می گرفتند حج می کردند صدقه میدادند تمام کارها را می کردند هم, ما هم برای خدا هم برای غیر خدا مشکلشون اینجا بود مشکلشون روی اعمال نبود مشکلشون دو چیز بود یکی منکر توحید بودند یکی دیگه منکر قیامت بود قیامت را مشرکین قبول نداشتند. انجام مس ارائةالذي يكردبو بالدين. پس مراد از این نماز خاندن نماز منافقین نیست، نماز اهل مکه هست. اما اعتقاد وقتی توحید نباشد اعتقاد زیاد زیاد هم نخواهند نماز را برای نشان دادن دیگران میخاندن. میخواستن که به دیگران نشان بدن که ما صالحیم، ما آبدیم، ما فلانیم لذا الله می فرماید فويل للمصلين هلاکت برای نماز گزاران اینو نماز گزارانی که الذين هم عن صلاتهم ساهون انهای که از نمازشون بی خبر هستند غافلند چون اون اعتقاد درست و صحیح خداي خدای عزوجل وجود ندارد الذين هم يراؤون ويمنعون المعون انهای که نشان میدهند خودشون را به مردم که ما صالحیم ما خوبیم و اما از نظر دادن از نظر سخاوت از نظر از کنن بخشش حتی معون به مردم نمیدهند معون میگن یعنی چیز بی ارزش معون چیز بی ارزش اصلش معون هر چیزی را میگویند که معمولا در گذشته مردم از خانه ها از همدیگه گرفتن مثلا کسی تو خونه خودش آتشی داشت خب همسایه می احمد که اجازه بده که من هم یک شوله آتش میخوام خونه خودم ببرم خب این شوله آتش را که او میخواد خونه خودش ببره از تو چی کم میشه هیچ چی کم نمیشه اما همه شوله آتش را نمیداد بعضی ها که بخل داشتن در حالی که چیزی از ایشون کم نمی شد. یا مثلا امروز همسایه میاد میگه که یه چوب که دارید ما میخواییم که اجاغیمون را روشن بکنیم داره ولی میگه نه ندارم این همون هست که یم نعونل معون در این حد در دلش بخل هست و نسبت به دیگران از کنم که بدی هست که این اندازه هم ارزه بخشش و ارزه دادن ندارد و یم المعون این همون انسانی هست که نسبت به قیامت اعتقاد و باوری ندارد خب تا اینجا موضوع تزهید من دنیا بود و توحید بود اما بعد از این خدای عزو جل تسلی بیان میفرماید برای رسول الله صلی الله علیہ وسلم